آقا رحمت رحمت رحمی بعد از بحثی که مردم اوستاد مطرح کردن باز متعرض یه بحث دیگه شدم که در کتب اصول صادقه داره و در مواحظ اصولی ما هم مطرح شده مخصوصاً در مسائل اصولی ارکسونت محدوده کندتری داشت و این مشکلش در ما بیشتر شد و اون درمان هم به تخصیص و نسخ که اگر یه عامی بود و خاصی بودی و حتی رضاقه متخالف بودن و درمان هم صورت تخصیص باشه یا نسخ باشه کده میشه ممنون خب این برس در میان کتب احسان یه خاصی داره به خاطر اینکه ناسی که تا ور نمیشه مثلا مثلاً شوند کتاب باشه یا نسی که تاب نمیاد نسی کتاب که هر تا ور نمیشه یه تا ور چند این میکنم حالا ده تا ور چند صد بیه حالا این کتاب با کتاب شوند با کتاب و شوند با سوند. ایجاد دلارانه ام شدیم خالص یا آمر. این بحث ما از آخرین اینکه هم دلار نمی‌بکنیم. خاص و یا آم رو چون داری میشه که آم بعد از خاصه مثلا این گفت دار شکر فصا برای بعد از یک حتی هم گفت اکتمل علمان که اون خاص قبل از آم آمده آیا اینجا آم ناسخه یعنی اون گفن و بعدش و از آم علمان وارد باز میشن چه خاصه چه یا آم باز هم دور تخصیص میشه تخصیص این خود به خصوص علمانی و حدود. پس این در میان احل سنت یک محدوده خاصی قبل خب از در بحث ارطان هستند. خاصی داشت اما در میان ما، در روایات ما این مشکلی که مقدار بیشتر شد سر بخشم این شد که در زنیت علمات ساره هم این مطلب رو توضیح دادن این که خیلی از مخصصات در زمان عینوه علیه مصطلح آمده یا در کتاب بوده یا در سنت بوده در زمان عیمه علیکم السلام آمده و اونجا دورانه هم بین تحسیس و نس اصولا مشکله چون مدهش این است که عیمه علیکم السلام ناسخ احکام باشن ناسخ امومات باشن مضافن اینکه چون که چونها زیاده این مقدار از نس التزام به این مقدار به کسیس و نس همخواده چه این مشکل دیگه داری پس این مسئله اتضاعا در میان نهر سنت بلا پس به قاعدی خودم بعد توضیحش رو ربن هم در میان علمای شیعه در اصول شیعه به همون صورت مطرح شد از باست قانبا این بحث رو کردن که تخصیص مقدم این هم اول بله عرض بکنن مثلا بعد وارد بحث بشیم و تخصیل بحث چون مثلا نسخ نادره و تخصیص کثیره رازواندوی رفت باشه به همون اغلب اغلب مثلا همون تخصیص یا جماعت دیگری ای بله این رو عرض می کنم خلاصه ای از بحث البته اترانه علیکم و رحمته الله و برکاته علمای ما در این جابس مرموز همشون بعد از این مسئله در آن انبهی تحسیس و نفر مسئله خود نفر هم شده این مسئله نفر بیشتر جنبه در حقیقت در حول کلامی داشت چون یهود مدینه به خصوص صلاح مشکین در مکه اما یهود در مدینه ای که از اشغالشون برای اسلام و الله این بود که شما در افتضایی کوکش میگیم بعد نسخش میکنیم معلوم میشه این خدایی که برای شما قرآن مرسان است و مثلا جاهل ی آشنا نیست یا متناقض صحبت میکنه مثلا احلا میگه این کار واجب و بعد میگه این کار واجب نیست این مثلا هم به نسخ افراز یهود بیشتر به نسخی بود در قرآن بود نه در سنت مسئله نصر رو هم خود مطرح که اولاقی این مسئله رو چه کتابه البیان خودشون رو هم به قلم خودشون مطرح داره اینجا خوب مقرره داره مقرره اما در البیانی که تفسیر قرآنه ایشون هم در اونجا رو بودن خود برمون و باز به مناسبت بکه برمون ساله به اتفایه اتراض در تساله که خارج شدن خوب خارج شدن و آخرش هم منتعرض وقت بدا شدن در اینجا متعرض بحث بدا شدم بعد از نص و مثلا بشینی که بلا رو شبیه نصر دارم که نص مثلا در کتاب تدریم و تشریعه و اما نصر بدا در کتاب تدریمه در عالم وجوده و این که بدا مثل نص هست و فرص فرقش با کتاب تدریم و تدریم کتاب تشریع و کتاب وجود و حیرت وجوده اضافه برو فرق چنداری با هم نمیکنند این به لحاظ نکته این هم که از مقایسی بوده که اهلت شنت روی ماه احساسیت نشون دادن از خود داخلشی اسماعیی های محضاری روی بداره منشون نمیخوام نمی خواهد باشم از ذر تاریخی رو خدمتون بکنم چون معروف شد که بزار لافی اسماعیی ی مقداری اسماعیدی ها رو مسئله بدا پی داخل مذهب اشکال کردن اهل سنت هم که اشکال کردن که اعمال از جهر نسبت جهر خدا میدن البته این اشکال بدا و در اهل سنت بود تقریبا الان بعض از اهل سنت که هنوز اشکال میدن غالبا ناغانه و بعضیشون که جوابهای شیع رو دادن ای خیلی این مسئله به اطلاع مانور نمیدن مسئله بدا و اون جوابها و این که بدا در آلم تکلیم مثل نصف در آلم تشریعه به این تحبیت اونجایی که من میتونم برای اولین بار ترسل میره دامان مهده شده در رنه یازدهم، 11 مرمون میره رساله رسالهی رو در بدا ندرشته که چام شده و اون ترسلانه رسالهیشون ناقصه یعنی بیشتر به سرک مقدمات رو اون نتیجه گیری نهایی نرسیده البته رساله مثل بقیه نمیشتای من امیداما تحقید داره محققه هست ایشون این تحقید رو میده که بدا در عالم حکیم مثل نرس در عالم تشریعه و شروع میکنه مقدمات ها ظاهرن حالا یا خود ایشون منصره شدن یا اگر بیشان محقق نظری نمیدونم اوناشون من خبر ندارن این کتابیشان ناقصه این کتاب جهی درم شده محقق مافیه مافیه لیکن اداریه های این کتاب ناقصه و شاید مثلا مرگون فیشه بوسی و کافی شاید من نایده مراجعه مکنش رو مراجعه کنم دارم منش مراجعه اما این تعبیر که بعدها در میان و علمای مامل هم حضرت استاد خیلی راید شد اینه و مسئله بداشون یکی از اصول عبائدی ما شده اصلا در کتاب کافی، در عباب توحی بابی در بابه در باری بداشون قرار داده داره بابی بدار رو گرده و این هم در حدیث و هم کسانی که شرح حدیث دادن هم کسانی در مسائل کلامی صفات باری وارد شده، هم کسانی در مسائل خلافی با اهل سنت و دعواهایی که با اهل سنت داری وارد شده. بلکه به علمای شیعه این که من خبردم ولی علم و اندالله است که به دار قبول کرده. ولی این کتابی که مال مرحوم خازی نسیر سوسیت محسل اسمش دارم را اسمشی دقیقه میترکنم چیه محسل این؟ تفریص محسل این کتاب نمیدونم حالا احتمال دیدم از ملحقات باشه چون خازی نسیر دلاشت کار از بزرگان مرحبه در این شکی نیست از عبارات معاصر ایشان مثل علام و غیره ایشان مدتی با اسمایلی ها بودن فرمان خادمتی در, در همین قلاع قاینات خودون قرستان در خاندان آل محتشم که اسمایلی بودند. چون بعد از علموت قلاعی هم اینها در اسفهان برار دادن و قلاعی رو در قاینات که قرستان خلاه اصمان به دست دولت افتاد و مستحیل شد اما خلاه قائنات موند تا زمانی که هراکو آمد تصدن هراکو از اسماعیلیها ها اول خلاه قولستان رو خراب کرد خاجه آزاز و خاجه بیش اونها بود حالا یا زندانی بود یا واقع و کتاب هایی رو در این مدت در تایید مذهب اسماعیلی نوشته بعضیش هم زمانه. شاه همزن شاپ کرد دانشگاه تیران برای اثبات اینکه ایشون اسمانگیه و هر حال ایشون کتاب هایی در این تلخیص سال محسن نهد و محسن پرشیص ما این دقیقشه که مطمئن کتاب رو به نمیست دو صفحه آخرش که من احتمال میدم الهافی باشه در اون دو صفحه آخر که به این چاپی که من دارم نفیه بدا کرده ایش هم مخواست مثل ارزوگان بین دیگه ولی بله ما هم واقعا تحجیب آقا نمی کنم احتمالا اسماییی ها دست این کار که چی دیگه دست آخر چون صفحه آخر, دو صفحه آخر از اجایب این کاری که در این کتاب خاجه انجام گرفته هم بدا همون که هم تقییه رو حمله کرده به دو چیز ایشون حمله کرده که به تغییر که به بدا. من خود من احتمال همیشه میدم که این مرحب باشه اینکه که در صفحه آخر یک ورم مثلا به کتاب اضافه کردن علایه من هنوز یک توجیه روشنی برای این کار خاجه حتی صلی اللہ و صدره اگر مال خاجه باشه قدسه رو هنوز پیدا نکنن این یک اجمالی بود آرزبوی متعرض شدن نقصه شما همینی که الان اجمالم روشن شد که مرحب خالا از سنمشون مرمون میز داماز شرف داده یه شرق مفصل در مقدمه خود اطلاع بردن حضرت استاد در اینجا در کتاب بیان متعرض مسئله بدا شدن یعنی آخرین بحثایی که به لحاظ اصولیشون در اینجا آوردن دوران انده این و نسخه بعدا معنای نسخه و بعضش هم بدا بدا راجعه بدایشون صحبت فرمیدن خب راجعه به بدا شون از بحث ما خارجی بحث هم فیلی فول کشیده وارد بحث نمیشیم افتیاری تداره که وارد بحث بشیم راجعه به نخ هم مرموم استاد تقریبا یک نهر اجمالی باید گفت در این نیا خواستن نگاه کنند. بحث به آخرش هم ایشون یه نقدر متعرض روایات شدن که تفصیل از در بدار صفحه سلطان 23 از صفحه 328 هم متعرض نسخ شده اون بحثیری که ما الان داریم مکن متعرض میشیم دران هم به نسخ و تخصیصه به قاعده اینجا صفحه 315 درمان هم به نسخ و تخصیصه قاعدش افتظام کرد که اول که این هم راجب تخصیص صحبت کرده هم اول به نسخ صحبت میفهمیدم بعد درمان هم به نسخ و تخصیص رو متعرض میشونم. مارا ما مثل این وارد میشیم. اینجا که می ترکیب اکتا رو به هم میبینیم. اول بحث نصحیشون رو میخونیم. اشاره حاضره. بعدم مسئله تخصیص. البته مسئله نصح هم در قدوم برها مرد بحث پرای گرفته. هم در کتب اصول و بنومنان ثبتی در کتب کلامی هم متعرض شده. شده. علوم و قرآن هم مثل علی افغان سیو دیگر هم خود ارسان در بیانشون که یکی از اینشون با عنوان مقدمه تفسیر میشنن تفسیر سور حمدن با چاک کردن با که انصافا خودش یک کتاب مستقلی در علوم و قرآن شده کتاب البیانشون در اصلا این اون زمان هایی که مثلا کمونیست در رای سوله و جولهی داشتن گروه بینام جماعات و علما تأثیر شدن در و این کتاب البیان به صورت به قول نیوزیا پاورریش و ال چاپ شده ان از به سر ایشون نوالات اون بر اون مراحل بعد از کتاب چون تذکر می فرند برن تذکر تفصیل رو برکرد خود کتاب یه جلد دیگه هم داره موارد زیادی از سوی بغره رو داره که چاپ نشده که اما اون مقدار کتاب شده مقدمات و استرا که استراهم هم ما بعد علوم نام گرفته علوم مستقلی شده به نامه قرآن شناسی قرآن پیجوری علاقه اصلاحی درش بکار رو دارده میشه ایشون در اینجا متحدث شدن و یک مقدار نکتش یعنی مخالف طرف این محلت در درجه اول یهوده و نکتی که در علوم القرآن ایشان متحدث شدن قیلت این نکتی در اینجا در اصول متحدث شدن اینجا به یک لحاظ متحدث شدن در علوم القرآن البیان به نکتی دیگری و اون نقطه بسه یه مقدار خاطهی داره اما در میان علمای اهل سنت هم قائل داره اینطور این نیست که در میان علمای اهل سنت قائل نداشته باشه بسیده که ایشون در علوم القرآن خیلی مطلق آیا ما اصولا در قرآن نسخ داریم یا نه مثلا من با مثال مسئله قبله حالا دو سه تقریب بشونی میخواه بارده کسوسیات بشن که مسئله علیه اینجوری گفته شده که خود پیغمبر علیم در مکه که نماز میخوندن روی به کعبه بود و بیت المقدس یعنی اون زاویه کعبه شنامادرایی جوری نیستند که رو به بیت المقدس هم باشه به کعبه هم بود در مدینه که بود دو سال کمتر از دو سال نماز رو به بیت المقدس می‌خوندن به خاطر اینکه اصولاً در اون درباره این مطلب دستور خاص الهی نبود خود رسولا به خاطر جلد اعتماد یهودی و به خاطر جلد دیگه اصولا مثلا در جامعه مکه و مدینه دین وقتی صحبت میشه به ذهن ها یهودیت میامد چون مسیحیت نفوذ نداشت این یک اصطلاح خوبانیست به هر دو یعنی هم به یهودیت و هم به مشکلیم در آیات کتاب کفر گفته شده اما در آیات کتاب یه راجعی یه اهل کتاب در اون مشکلیم این بحثی در ازای هم قانون ما به دانشوزین تعریف و که انصافا تحقیق قرآنی نشون میده مشترک در مقابل اهل کتابه و این اینجوری در ذهنیت بود که دینی که دین اهل کتاب باشه دین داشته میشه یهودیت چون بعد دیگری نبود مسئله اینکه در نجران بود که دو روز برایش هم در شما ما تو این طرف بود توی ایران هم که به سن رخصا من از بالا ایران هم نذاشتن محفیت از بود لذا وقتی صحبات دین می شود صحبات اهل کتاب می شود مثلا چون مشکی شکیم این افرازی که جاگلن نادانن ای خبرن ای ثوادن عقب اختادن در سبرموزیوم رو برنس می گرم دهاتی همی چی در جونه ای ای این افرادی که بی اینا رو می گفتن من در مقابل دینداران رو اهل کتاب اهل اطلاع دادشمند می بودن. این اهل کتاب منطرف می شود اصطلاح. چرا؟ چون اگه یهود نبود که باقیش مشتر بودن آن پاسم در مدینه و خوص و حضر مشتر بودن فقط یهود بو یه بود کرد یک کار در مکه یهود وجود نداشت حالا از نصارهایی که دون از از تو مکه نصرانی بودن یکی وعضت منوفر دایی خدیجه اما مسیحیت در کل منطقه نفوزی نداشت من از زیرات العرم من یه توضیحی دادم از هدیان یعنی از مکه داریم به طرف شام از فقط یهودیت بود و از مکه این به طرف یمن در نجران مسیحیت بود پایگاه مهمی هم برای مسیحیت وجود داشت خود یمن هم بین مشرک بودن لیکن مهموری این دولتی که از های ایران بود مهموران دولتی که در اونجا بودن زردوشی بودن خیلی هم محل فلا نبود بسولن مجموعه اهل مکه مدینه که خاص را اسلامه خیلی ارتباط نزدیک با مجروسیت و با اصطلاح زردوشتی نداشتن و ازا احکام زردوشتی هم مجروس آملوه و معاملات اهل کتاب در حقیقت بعد از ایمان آوردن اهل بحرین بود چون عزیزیانی مجروسی در اونجا بود حضرت علاقات ملحظمی ردار کرستم بعدم خالدن ولی یه مقدار از سنن به من براجب مجروس آملوه و معاملات اهل کتاب این در برخوردیست که با مجوسی ها و زردشتی های بحرین شد یه در خود مدینه و مکه و اون مقدارهی که در زمان رسول الله فتح اینه ها شد هیچ مجروسی وجود نداشت از دائره مجروس خارج بود یا مشهد بودن یا یهودی یه, یه دائره دور هم که نجران بود اونم به جنگ نرسی فیقن برقی سه مباهله امروز بوده مباهله یا فردست خود میگرد گرد 24 امروز 22 رون نیست یا امروز 23 از فردار روز مباهله برای اصلا با نفتارایی نجام هم حضرت مباهله فرد بودن که حالا یارموزی و فردار روز مباهله بعد از برگشتن ایشون انتیجا صلیه داشت چون مسیحی ها آمده بودن در مکه بود. مدینه وجود داشتن که این قصه مباهله در همه روزها انجام بود اول که به از بحث خارج نشن این بحث نز یک جهت برخوردی با یهود داشت که و نموخلدیان در انجیل هم یک موارد خیلی کمی رو از تورات نسخ کرده در همین انجیل گریمتا باپنش تصریح میکنه که هر چیزی که در ناموس سعیو بده ناموس تورات هست همونو شامل انجام بدهن و الا همون بسته پساصو برمی داره که آکسیتی میتونه چادر سوراخ راست بگیره یعنی استقلال خودشون پساصو از سماعی بعد میذاره و الا اون عمره مسائل رو علامافه تورات اصلا احکامی که در صورت بعض احکام دیم مثلا نصف مثل رجبانه اون بخش دیگری و, دیگر و الان اساسا اون بود و نسخ در این شرایع و قول خودشون اسرائیلی اینا مدلی بودن که احکام الانی نسخ نشده پس این پیغمبر اسلام که میگه نصف این دین نیست خدایی نیست الانی نیست بحث یک بحثش این بود که مرموهای پویه هم تقریبا بیشتر از این, این جا توی بود هم ب یه بعضی است که در خود آیات قرآن این بحث که آیات قرآن درش نسخ باشه این مخصوصا از قرن دوم به بعدی که اول قرن سوم به شدت در جامعه اسلامی جا افتاد اولا در جامعه ما این که به خاطر اینکه به همین منصوب بود که هر کسی یا ائمه علیه السلام داشتن تو مقدمه تفسیر علی نور و جایی هم آمد رسول این کتاب تفسیر محکم شب رو زیادی این نفر قرآن ناسخن منسوخن هم من بخواستن مجملن اون چون این تعبیر که در قرآن آمده این مطرح شد به خاطر اینکه مثلا کسی هر کسی برای خودش نظر در امور و قرآن نده و محسوسا الان آره به رو بوده که گاهبایی شده که در همین قرآن موجود اول ناسخه بعد منسوخه به عکس قصه یعنی به ناسخ اول آن که ناسخ باید بعد بیاد حالا بعد این یک منشعی شده برای وحث و بعدها اده زیادی هم از علمای طرف این شیعه و سنی های اصلا به نام ناسخ برگران و نوشته مرشن و ازشان کاف بوده، اگر رو هایی دیید فهرستان راسته ما زیاد دارید از شیعه مثلا این کتاب ناسخ برگران و منسوخوی که نصاده شد مرمون سرده نمدلا مثلا این مثلا سونی ها بزردن چاپ همون شد بعدش هم من دارن برها این یواشه های رواشی پیدا کردن بعد از این رواش که قاعده بازی اده شروع کردن اونها بیش کردن حل سیفی رو ملاحظه رو فرمایی ادهی از, از خود علمای اهل سنت اصلا نصف رو در کتاب منکر شده. گفتن نصف درسته اما در کتاب نیست یعنی شد در کتاب نیست یعنی میگه فلان آیه در کتاب بود این آیه دیگه در خود کتاب این رو ممکن شدن این آمن این تو دنیای ایسان وارد شد از وقت در بین علموی شیعه خیلی اینجا نه افتاد در خیلی روی داره. دارن اون اصطاب در دستالاله ها نفته ایشون تو البيان ایشون خیلی اصرار دارن که ما ناسخ در قرآن مرد ناسخ و محسور ندارن مثلا تخصیص عام بیان اینجوریه نه اینکه ناسخ باشه یک حکم رو بردارن از کردن برگی آندن تو اون هم شبه کردن که این اصلا نصر نبوده اون فرسان شبیه تفریز اله رسول الله در تا معنونی حکم امتحانی بوده اصلا در مکه در این 11 سال چون دو سال دو, سال دو سال دو سالی که اسلام علنی نبود در این دو سالی که اسلام علنه بود و بعد علنی شد اصلا ده سال اسلام در مکه علنی شد درسته من در اون مسئول حرام رو به کربه به بهتر مهزت نماز میکنه همه مرد نبوده مثل لاسرات الا در مورده تشکیل شده باشه الان فرسون یکی تو خونهش بوده چون عمده نمازهایی هم که جمع شدن در خونه کیه ای که ای در صفا بوده کوه صفا زیده نماز نه. نه زیده نماز نماز نمازمی شده برا نمازمی نه داره داره, داره نماز محزت محزت. که بعدا دیگه مشکل حمله کردن داره اسمش خوب داره کوه تپا این تون از تپا تقریبا رو به چریستان راه هست بله اون موقع حالا من نمیدونم کسی سیمو تعرض من الان به ذهنم امروز راه رفت حالا ذهن خودم نموداره بهش نگاه می آیا واقعا مثلا اینجوری بود که اگر نماز رو یه جای دیگه باطل بود با صلاه فجر و تو ذهنم نیست اینکه خود پیغمبران این 2 سال نزدیک 2 سالی که در مکه مدینه نشوردن هر شب بودن اناری در مسجد حبشون رو به اوهب می‌خوندن یعنی پشت این کلیه ای مارسیه این هم ظاهرا شواهد معینه اما حالا اینکه آیا واقع این دقتی که الان ماها داریم و استغبالو می‌دونیم و عزای سیاره باه اینا آیا واقع این دقت رو اعمال می‌کردن برای که رو به بیت المقدس نماز بخونن این رو هم خیلی بر ما روشن نیست احتمال مولا داره که c'è che andare, usul ghu non fa, ma قبل che hale yek rukn elzami base qabl az salat wa niyat nakel qiblatan tarzaha va shaz khud alquran dare بله جعل لو این تمام ها داره فضل تعبیرش بکن تو احتمال داره کن ها اشاره به این باشه که یک نوع اختیار است حالا من در این چیزی نمیگم چون واقعا این مطلب رو مراجعه نکردم چون تو مراجعه نکردم نمی‌دونم چه تو, تو به هر حال یک ادوی حق این فکر که اون مثل قد که نقد شده یا نقد نبوده اصلا حکمی نبوده اوکی ازام نمیاد یعنی شما این کار را انجام هم امضا کردیم نه اینکه این مثلا بیاین مناظری که خداوند من امر کرده بوده که شما رو به دلیل ما به هر حال مربوط است در این بخش آیات گفته آباد در سری شمرنده با عثمان سریمانیان سری که بود این این جوانی که اینجا چه بوده این یه جعل الهی نبوده اختیار رسول الله بود در از این جعل شد از اینکه میده نه را تکلیف که که چرا این خلف معجزه خصوصا فرض معجزه نه در جای ما نه بنظاره میاد حل شود الان این لحظه حضور ذهن ندارم به نظرا میاد این بحثی دیدن دیدن بعضی از ها رو شیعه مطرح کردن که اصلا تهله به به اصطلاح بعدی لا فراس الله الا کرده ن بوده فبل وجود حضرت مصدر حرام به این صورت ن حالا این بحث رو فعلا نمیخوان نتیجه گیری نهایی بکنن احتمال داره میخوان وارد این بحثا بشن پس یک بست راجع به نسخ در شریعت یک بست راجع به نسخ در قرآنه مرمون استاد نسخ در شریعت قبول می اما نسخ در قرآن رو قبول نمی اینکه در قرآن کریم یک آیه ناسخ آیه دیگری باشه نه این فاضل محاصل ما داری این دا سعی کرده این مردم آیاتی رو که ادعای نسخ شده این صافه شدیه که دوتا آیه دیاز نسخ بکنه مردم استاد هم معظم آیاتی رو که استدلال شده در نصف و نص آورده و تعجب از ایشون از آیات که شبهه نص اونها خیلی قضیه ایشون نکرده خود مردم استاد نکرده حالا دیگه لالا نه خب نه این که من اولا نص اگه نشه نه لغوی باشه نه نص شریعت باشه و این احتمال هم داره که مثلا بعضی از آیات در افتیزاد یک شکل وارد شدن بعد یا به جا شده, شده, شده. مثلا این سوره منزمله که شما توی همه آیات کتاه که واضح آیات مکهیست اون آیات آخرش یه طولانیه که این احتمال و مضمونش هم به مضمون مدینه می کاره شون درش قتال آمده این در اول به اصطر که قتال نبوده این که علمانه که در مردم سلسل ل احتمال داره که این آیاتی بوده اما بعد یک دفعه در مدینه سیاهش عوض شده و تعجب اینه که در سوره مدثر هم, هم اینطوره چیز عجیبی در 232 وجوه اوائل قرانه تمام سوره هم متضمن هم مدثر آیات پساره کوتاهه که به اصطلاح خودشون مناسب با آیات مکیه در سوره مدثر یک دفعه تو وسطش یک آیه طولانی بوده در 3400 آواذ تو وسط سوره مدثر و تاگیریش هم به تغییرات مدینه میوره من احتمال میدم چون این تدویب قران هم الهی است احتمال داره که بعضی آیات بوده عوض شده یعنی که چه نزولش در مدینه و گفته شده اینجا بوده در صورتی مزدجمله جزء اوائل سوره تمام سوره آیات قتال الا این آخرش اون وسطش بود این آخرش این دو تا خیلی غیر طبیعی یعنی شکل آی و تفصیل آی و مضمون آیه چون در موضوع مزم... و چی آیه ماریه و من چی اند؟ الان من و فیکو را یادمون فلاته میگن داخلون قاطمون فی سبیل الله خب در اول به اساسه قاطمون فی سبیل الله مثلا حفظم آیه رو هم زدارم نمیخوام همهشو بگم درazem حالا باید بحث بشن تون یک بحث خاص خودشه به هر حال بحث نسخ یک جهات کلامی و عواملی داره علاوه که یک جهات اصولی هم داره حالا من اون بحث اشاره میخواستم بگم یه جرد اصولی داره که اینجا هم مرمون استاد متعارف شده اما در بحث های اصولی متعارف من از کدم متاسفانه این کتاب های اصول ما یه مقدام اون شکل ظاهر مباحث اصولی متعارف و در دنیای اصول و اون وقت به هم ریخیه این بحث نهست و در کتاب و اصولی توی مباحث مسابر تشریف در زید عنوان کتاب و بعد سنت رو گردن از کردن من کرارن در اصول دو جور بحث شده بود در کنگوین کلی اصول یکی از خجت معنی مصدر تشریف که میگیم مثلا کتاب خجته از اون سنت یکی از خجت معنی طروح اثبات ما الان در اصولی شفایه کتاب اصولی خودمون رو فرسیم مثل کشفایه یا فرسیم کتاب مرحوم استاد یا فواید مرحوم داییم ما بحث اول رو نداریم بیشترین بحثای ما رو طرق اصباته مثلا به مناسبه که شیخ خنساری متعرض اجماع منقول شده و اینکه اجماع منقول به خبر واحد رو روز تو اصباته لیکن در مایه بعدی ما متعرض خود اجماع هم شده که اهل سنت قائلا اهل سنت اجماع رو به حاضر یکی از مطالب تشریع قائلا اما مستقلن ماها خائل نشدیم یعنی مستقلن ماها این رو نیوردیم به این صورت مستقل و در مبارس کتاب در یکی از مواردی را بحث نفس مدرگیم این تو در مبارس کتاب لیکن در کتاب مثل مرمومستان این تو مبارس آماقاست آبده خب موارد مبارس آماقاست بحث ظهورات دیگه بحث ظهورات این بحث باید آدتا تو بحث کتاب میامن و با خودش. و خیلی کون استاد متعرضه تخصیص و نصف شدن حالا که این مرمون منطقه در اینجا بعد برس نصف و تخصیص متعرضه نصف نشدن من اون استاد اینجا برس نصف هم اضافه که جاشم نیست این جایی نیست تو برس آموخاتی برس نصف مدن نیست نصف یه برس مستقلی پی که به لحاظ اینکه تخصیص و نصف خیلی بارو ما با که تا بحث کردیم نصف هم تضاف بحث بکنیم به این مناسبت را ایلا این جایین بحث در این جایین بحث در قصور یک جای خاصی خودشه اینا به یک مناسبت در سنت هم بحث کردن که یه سنت ناصف کتاب پیش آنی میشه آیا کتاب ناصف سنت میشه یا نمیشه و بحثی هم راجع به خود سنت که سنت ناصف سنت میشه یه بحث راجع به کتاب یعنی در کتاب اقلی سنن تو مواحظه مسادر تشریف متعرض شدن و درستش هم همونه انصاف هم تردیب بحث علمی هم همونه از هم ترکیب بحث علمی انصاف خارج شدیم منحج فهی هم همونه این راجع به اشمال بحث اینجای کار بحث به جاست و از جاس. راجه به نفس همچنان که دیگه شادن تالا به گوش کرده اشکال معروف یعنی همین بود که اول اشا خداوند تعالی حکیم نیست خداوند جاهل معروف این خدایی که شما میگی شما به اون دعوت میکن هیچ نداره یک حکمی رو مصیحت میدونه قرار میگیره میدون. بعد از مدتی هم میگه خلاف رو چالش میکنه مثلا میگه اول واجب بعد میگه مستحب بعد میگه حرام بعد میگه نه حرام نیست مثلا سوم عاشورا اول شما واجب سال دوم آغاز سال دوم سوم عاشورا به عمل بعد سال سوم هم دیگه نگرفتن اینا هم مثل از هر از کلم یک دقت رو کنید یه بحث هم اون بحثیشون اینکه اشاره کردن نیمخواه منوازون بحث کنید خارجون شد از بحث کلن یه بحثی اینه که حتی اون سوما شورا هم جه نبوده که بر نتخ بشه اده این اونو نتخ میگیرن که ادامه سفر وجود یه برقی جواد املا اده ای تفسیرشون یک نوع همون به صلاح عمل شخصی رسول الله بوده یعنی رسول الله به مصالح اجتماعی و مصالح شخصی هم داد تازه وارد مدینه شدن چند ماه این در ورودشون مدینه خب یکوهم در یک این نقله کتاب در مدینه شخصی یکم داشت بلا شک سه نقطه مهم مدینه داشت که اینا رو و حضرت معنوی و عمرنجین و عمرت و با موسی علیه السلام خب اینا خودش برابر عناوین در روز نهم اون ماه پیغمه از نحن یه بود چون از کن روزه آشورا آشورایی که در اسطلاحیه بوده از نهم آشورا تا سواس در حیرت از این نهم از بعد از, از ازانه به اصلاح ماهان که ازان روز در نهم اینا روزه میگرفتن تا مغرب روز دهم این روزه مخصوصی بود این روزه آشورا شما شما هم که چند دفعی اگه هم ارسنه و این ن هز دری که صوم عاشورا هوش تحسین می‌کنه عاشورا نهم شما اینطور که می‌دونید عاشورا نهم یعنی چی؟ این عاشورا نهم یعنی اون صوم عاشورایی نهرو روز نهم نه، این تا عاشورا نهم است. در اون صوم اون سوم عاشورایی که یهودی‌گرفتند، این روز نهمه. از زود روز نهم اون زود گرفتند شر هم. اما ن با زن و همچنین می‌دونند. شب هم اگر نخاویده بودن قضا میخوردن اما اگه چوتشو می‌ذار بعد از مغرب دیگه باز قضا نمیخوردن این می‌کشید تا بعد از زور تا طلوع رو رو روز دما روزه اونم به این که خداوند متعال در این روز موسی و اینسان از اون دریای که اسم را در دریا در قرآن داره را مراد از اون دریا رود نیل خدا متعال حضرت موسی رو از روزنی صالح نجات داد و فرعون غرق شد وقتی این مطلب به رسول الله گفته شد که یه روزه گرفتن خب حضرتم فرمودن که اگر صحبت تکریم به احترام هست من اولا هستم به تکریم موسی. شریعت ما شما شریعت انطلافی داریم ما شریعت صحیح لذا فرمودن که مطمون هم به احترام هست از توی دقیقه من هم تنگاه بودن از کتبه علایه کما که کما کتبه رو من قبل کن <تصح> مسئله روز ماه رمزان این دیگه همون که ما اولا که چه برمی این من اشاره میکنم یه خودتونم و آن خواستم بحث بکنم یه بحثی هست من به دیدن یا من اگه اشتباه نکنم که به کجا دیدن که اصلا اون نسخ اصطلاحی نبوده بوده یعنی چیز رخصتی بوده که شما هزه بوده بگیم په هموردی یه بود ممکنه از این سو ما بکنن شما نه ما اولا هستیم روزه می ما به طریقه اولاد این روزه رو احترام میکنیم از روزه گرفتن در سال استقومی شد چون مارموزان شده بود دیگه نیازی نبود البته در روایت داره نصف صوم و شهر رمضان کل صوم قبلت این, این نصف این معنی اصطلاحیه نصف در نجوره این بیان اون که در روزه بود مثلا ببینید شما خود مکه، ماهرمضان که نمیرن خدا پیغمبر سال اول که مدینه تشیف د قبلاز ماه رمضانموتو رفیع بود ماه رمضان سال اول پیغمبر روزه نرت کس روزه نرف پیمبر نا خنه خص لا روزه نرفت دقت یکن اونوخت این ایه آمد آیه روزه اما روزه آشورا جزء جعل نشد این آغای امنه فتن نسخ سوم و شهر رمضان کل صوم کان قبله این مراد از نسخ اینه. یعنی یک حکم بوده فعلا اون حق رو برداشتیم نیست اینطور نیست این اصلا در حقیق حقی نبود یه نوع تکریم اظهار کرامت داره از موسا زامالاله رستان ما همون چی قدرت مانور طبیقاتی رو از یهودی بگیرن یهودی ها, یهودی ها ما امتداد از موسا هستیم فعلا با خواستان ما امتداد از موسا هستیم نشونه اون قدرت مانور این نسخنی یک تفکل اوشنگ شد برای آ این این رو اگر پیگیری بکنید نکات خوبی داره من خیلی مختصر الان متعرض شدم اینا در نهایت نخر حالا خلاصه از مطلب خیلی نمیخاصیم مورد بشین نشینجوشه چیزی نبود بحث هم حقش داده نمیشه استاد همون شبهه همون جوابی که معروف دادن اگه سوال هم آمده ایشون در جواب از یهود این نقطه رو که آیا این مسعد باشه نه باشه چیه خدا یه شده من جواب اسلام یه کلمه است زیاده از زیادی از قدر ما اینجا هستند خصوصا اسلام خلاصه ای جواب اینه که اصلا هوک از قبل محدود بوده ما نمی دونستیم اینه که یادم هم هوک مطلع است اونجا رو که من مدرسه گرفتم اگر هوک میان بوده این محدود هم سال اول بوده اما نمی دونستیم انشوم یعنی پیگم برید چیزی هم نگفتند نگفتند نگفتن که یه هوک دائم هست نه من احتمالا در هر آشورای بوده بگینی بوده بگیرستن ساکت هم بوده. تصور عمومی این بود که در آشراهای بعدی هم بگیرن این تصور عمومی پس وقتی که روزه مانم از آمد این نشون داد که در این شریعت مقدسه صومی که جرده صوم مانم از مان. صوم دیگه ای جرد نشده حت. خوبی پس در این قطع نیست چون اصل خود نهت میگن در لغت عرب معنای ازالت در معنی حسیس نه شمس و عقل خورشید سایه رو برداشت این تا خرشی اون ساله که چیمه بالا سایه از به میری ادعای اینه که خود موارد استعمال نفس رمه ازاله و نابودیه پس اینجا ازاله نیست. نه اینجای خوب بود، برداشتن یک ظاهری بود اون ظاهر منکشف شد فرق قصد این که خورشید بالا بیا و سایه دیوار رو برداره و ببین که یک قصه عبری جلو خورشید باشه ابر کنار بره این از تعویض خوشی بالا رفتین از قبیل ارتش نار رفتنه مردا هم خیال می‌کردن پیغمبر کی روز عاشور روز گرفتن سال دوم تا با. ایشون بعدین هر سال روزه فراهم گرفت این عاشور محرم سال دوم توی ماه رمضان همون سال حساب می‌کنن ماه میشه ششم میشه توی ماه رمضان حق ما میشه توی ماه شعبان همون سال به خاطر نار اشتباهی شده توی ماه شعبان همون سال اون ماه آیه مبارکه کوتبه علیکم الصیام چون آیه قبل از محرم شد توی ماه شعبان نازل شد توی ماه شعبان همون سال آیه سوم نازل شد کوتبه علیکم الصیام اینجا این تعبیرش کوتبه علیکم الصیام این کوتبه علیکم الصیام اولا جهل روزه بعد ایام معذورات آیه دوم دو بعد شهر ما ما سه آیه خوش همه این خود این نشون داره که اون که کتابت شده آشورا نیست یعنی یک تصوری بود تصور برداشته شد. یا به عبارت دیگر نشین داد که مصلحت این روزه مال همین یه روز رود مسلحت روزه گرفتن روز آشورا همون مال سال اول بود سالی بود که همه سرمون ها به سا و نداشتن این خواهده یاب باستاد اون مراجعه کن بعد بابا سلام نادری کن خوب شد زنگ زدی نگاه کنی اگه میشه زنگ هم به سخی زن چون دیشب اونجا بود